Thank you. با درود به شما هممیهنان گرامی و شنوندگان بسیار بسیار پر مهر رادیو دوستداران ایران زمین کیومرث هستم و با برنامه فرهنگ در خدمت شما هممیهنان عزیز همانند هر پنج شنبه در خدمت استاد گرامی پروفسور مروچه جمالی امروز پنج شنبه 26ام فروردین ماه سال 3742 ایرانی جتوشتی برابر با بر پایزده همه 2004 میلادی تا ساعت 22 با شما و در خدمت شما خواهید بود آرم برنامه پرهنگ شهر رو برای شما عجیزان پخش خواهم کرد و سپس پروفیسور منوچه جمالی رو, رو روی خط مستقیم خواهید داشت رسسی به ریشه اندیشه های بنیادی مولوی بلخی در پرهنگ ایران پرداخته می شود. مولوی بینش را جستجو و کشف و دیدن خشن خود انسان میدانند. بینش دیدن زیبایی خود است یا به عبارت دیگر، بینش حقیقی زایانیدن خدا از خود است چرا مولوی میگوید که بینش کشف حسن یا زیبایی در خود است چرا میگوید بینش کشف زیبایی خداست چرا دین برای مولوی و عرفا چیزی جز دیدن روی زیبای خدا در خود نیست چرا اون چه سنت و آموزش و معقول و معقول است به آنها اهمیتی نمیدهند و اصل دین را که معنایش بینش است دیدن چهره زیبای خدا در خود می دانند. چهره خدا اصل سرچشمه زیبایی است و او در جستجوی دیدن اصل زیبایی است. بینش حقیقی را کشف اصل زیبایی و دیدن اصل زیبایی و عاشق شدن به اصل زیبایی در خود میدانند. البته این اندیشه چنانکه دیده خواهد شد بنیاد قدیده دین یا بینش در ایران بوده است مولوی این اندیشه را از زبان شعیب رو باید میکنند شعیب نا نام است که پدرزن موسا میباشد این یک کاهنی در کوه سینا بوده است سینا یعنی سیمور در ابری نام او است که به معنای دوست خدا و ال یا ال که همون سیمورغ است یعنی دوست سیمورغ است ریک در فارسی هم به معنای دوست است دوست و دوستی است حالا این شعیب بانگ شعیب و ناله اش عشق هم چون جاله چون شد زهد از آسمان آمد سهرگاه نداد ندا شعیب میدارید مینالید به خدا خدا به او میگوید گر مجرمی بخشید امد و از جرم آمرزید امد پردوز خواهی داد امد خاموش رها کن این دعا گفتا نه گفتا نه این خواهم نه آن. دیدار حق خواهم عیان تو را میخوام ببینم گر هفت بحر آتش شود من در روم بحر لغ من فقط اگر هفت بحرم آتش بشود من فقط لغای تو را میخوام گررانده اون منظرم بست دست از او چشم ترم من در جهیم اولاترم یعنی در دوزخ جنت نشاید مر مرا جنت مرا بیروی او هم دوزخ است و هم عدو من سوختم زین رنگو بو کو فر انوار بقا گفتند باری کم گری به او گفتند که کم گریه بکن تا کم نگردد مفسری که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا یعنی گریه گفت در دو چشمم آقبت خواهند دیدن اون سفر هر جز به من می شود کی قمخورم من از اما یعنی از کوری. اون کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو، اون کس که بیند روی تو مجنون نگرده کو، بگو سنگ و کلوخی باشد او, او را چرا خواهم بلا رنج و بلای زین بتر کس تو بود جان بیخبر ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسن بل اما هیچ کس را گرفتار کوری مرون جنها تو سیلاوی روان تا ساحل دریای جان از آشنایان مونقطه با بحر آشنا سیلی روان اندر وله سیلی دگر گم کرده ره الحمدلله گویدان دین آهو لاهو و ولا. بله. حالا در این دو چهر آخر دیده می شود که جان به دیدار خدا مانند سیلی به دریا می تا بعد دیدار آمیخته شدن سیل با دریاست مولوی میخواهد با نوای چنگ زهره یعنی با نوای چنگ رام خدای ایران به سوی دیدار با خدا برود که خواهیم دید همون دیدار روی سیمرغ است چنگ زنی زهره چنگ زنی زهره من تا که بر این تن تن, تن گوش بر این بانگ هم دیده به دیدار روم این بانگ رام او را به بینش اصل زیبا زیبایی میکشاند این است که همه آموزه های دینی را بیش از فسهی که به گوش میرسند نمیدانند. گوشم شنید قصه ایمان و شد گوشم شنید قصه ایمان و مصد شد که قسم چشم چش چشم کدار بخش مخصوص چشم کدار کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست از دیدن چهره زیباس که زیباس که مصد و رقصان میشود اونگاه میگوید یک دست جام باودم یک دست ظلف یار رقص چنین میانه میدانم آرزوست این در فارسی این معنایی را که امروزه ملها و متخصصین دین به آن میدهند ندارد دین در فارسی اساسا به معنای بینش زایشی است بینشی که از خود انسان بذاید. و واژه دعنا که همون دین باشد از دو جز ساخته شده است یکی دا یکی نا یا دی یا نا این معانی اینها خیلی روشن است که این دا در بختیاری به معنای مادر است در کردی معانی مختلف دارد که من به عنوان صفت همین نای میارم دعی نا یعنی نای اندیشنده نای نو کننده نای بخشنده نای مداوا کننده نای چکایت کنند نای مینال داینان دا در کردی به معنای ابداع کننده است دین داینا دا نای ابداع کننده است دین نای نگاه کننده است به زودی خواهیم دید که دین دختر زیبایی است که هم چند هم چند زیبا، تمام زیبایان جهان زیباست. به عبارت دیگر دین دختری زن خدایی است که اصل زیبایی این اصل زیبایی از هر انسانی که مرد چه زن زاییده می شود تصمیم دو چیز است هم اصل نگاه کننده یعنی بینش است و هم اصل زیبایی دیده زیبایی را می بینه. دیده برای دیدن زیبایی دید دین دیدن زیبایی همچنین دین اندیشیدن به زیبایی دین ابداع زیبایی دین بخشنده زیبایی دین مادر زیبایی این مفاهیم دین هیچ کدام با آنچه ما در ذهن از دین به طور متداول داریم و امروزه در کشورمان از آن ادعا میشود سازگار نیست این مفاهیمی که ما از دین داریم باید همه را دور ریخت و از آن گسست تا دریافت که ایرانی با نام دین چه اندیشید دین داشتن چشم برای دیدن اصل زیبایی بود دین اندیشیدن برای ابداع زیبایی در گیتی بود دین بخشیدن زیبایی به اجتماع و جهان بود از این رو آنچه را ما امروزه سیاست مینامیم ایرانی جهان آرایی، کشور آرایی، شهر آرایی میخواند. یعنی چی؟ یعنی زیبا ساختن جهان برای دیدن آن میدانست. پیدایش و زایش در پرهنگ ایران همین که متلازم و همزاد با روشنی و بینش است. آنکه پیدا می روشن می و دیده می بن کیهان بن زمان بن انسان در فرهنگ ایران زیباست زیبایی میخواهد که همه او را ببینند زیبایی میخواهد که خود را ببیند از این رو میخواهد پیدا شود و روشن شود تا زیبایی خود را ببیند و محل و شیفته زیبایی خود شود تا عآشق زیبایی خود شود این یکی از بنیادهای فرهنگ ایران است. اون در خود در تاریکی و پوست و در زهدان نمی گنجد و پدیدار می شود تا کام از زیبایی خود ببرد. خدا در او نهفته است و این زیبایی نهفته می خواهد خود را ببیند. به همین علت در فرهنگ ایران خدا تخم است در تاریکی یک مینوس، مینو یعنی تو میخواهد روی خود را ببیند این است که گیتی میشود چون اصل زیبایی است که هزاران صورت به خود میگیرد و در این هزار، هزاران صورت بینش به زیبایی خود در صورت ها در نقش ها در رنگ ها در لحن ها و در موسیقی ها مییابد این خدا در شکل تخت یا است که می روید و درختی می شود. که هر شاخش، هر اش گل و برگ هر یک از این شاخه ها خدایی می شود. که چهره آن خدای پنهان را می نماید. همه خدایان ایران چهره اون خدای ناپیدا هستند. که آن خدا را حقامنشی ها انامک. یعنی بینام میخوندن او بی صورت و بینام است و همه خدایان صورتهای رنگارنگ و زیبای او هستند. او در زیبایی های گونه آگون میشود بدینسان خدا خود را در صورتهایش در پیدایش‌هایش، در زیبایی هایش میبیند خدای ایرانی نمیخواهد همیشه انامک بی صورت بماند چون سرچشمه زیبایی می خواهد خیش خویش را در همه امکانات صورت ببیند. او همه صورتها می شود همه رنگ ها می شود. همه بوها می شود همه آهنگ ها می شود. همه گل ها همه درختان و گیاهان همه جان ها همه انسان ها می به بالاخره هر چیزی می شود تا زیبایی خود را. در هر صورتش ببیند اون است که زیبایی می آفریند. این پدیده نظر و نگرش سپس در عرفان ماند بدون آن که پیشینه آن را دقیقا بداند مثلا حافظ میگوید که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به کنند این نظر این همون نظر آفریننده ای است که در انسان مکنون هست ما با ذهن اسلامی یا یهودی یا مسیحی خود میگوییم خوب این خداست که با نگاهش زیبایی میآفریند اصل زیبایی چون هم نگاه هست و هم زیبایی دوست دارد که خودش زیبایی خودش را ببیند و عاشق خودش بشود مست از دیدار خودش بشود خوب این چراطی به انسان ها دارد علت این فکر آن است که اندیشه خدا در فرهنگ ایران در ذهن ما حضور ندارد بلکه اگر هم یک آن باشد سپس دود از آگاه بود ما محو می‌شود و همان اندیشه اسلامی فوری جایش را می‌گیرد در فرهنگ ایران خدا خوشه بسیار بزرگی بر فراز درخت بستخمه است و انسان ها هستند از این خوکه بزرگ و این خوشه بزرگ سیمور نام دارد در اسطوره آفرینش میآید که سیمرغ فراز درخت تخمه نشسته است اساساً همه تخمه های زندگان یک خوشان ایرانیان به خوشه باس میگفتند که سپس تبدیل به بس شده است همین بس و بسیار ما درخت بس تخمه به معنای درخت بسیار تخمه و معنای امروز نیست که معمولاً ترجمه می شود. پس درخت تخ درختی است که همه تخمه هایش یک خوش هست و نام این خوش سیمرغ است. حالا دوست ندارید اسم سیمرغ رو ببرید اسم رو به دارید فرهنگ چون فرهنگ هم یک نام سیمرغ است. این است که قوش که همون هما باشد به, مع... به معنای خوچه است مثلا درویش واژه درویش در پهلوی درهی است یعنی سه خوچه مثلا در ترکی به هما بوقدای تو میگوین بوقدای به معنای خوچه است خوچه همه انسان ها سیمر نام دارد او خودش را می و می و انسان ها تخم های خدایان که در جهان می ریزند. یک بخش از این تصویر که جمع انسان ها سی می در داستان اتار در منطق تر, تر باقی مانده است که وقتی سی تا مرغ در جستجوی سیمرغ هستند به هفت مرحله را پیمودند و جستند ناگاهان در میابند که این خودشان هستند که با هم یک سیمر هن. این خودشان هستند که با هم یک شاهند یک خدایند حالا این انسان که توکم سیمر تخم خدا هست خودش درست همون گوهر خدا را دارد در فرهنگ ایران انسان همان اصالت خدا را دارد انسان اونقدر اصیل است که خدا از اینجا می شود در که پایان داستان جمشید که جمشید منی کرد و گفت من خدایم جعلیس و ساخته دست موبدان بدان می باشم این انسان که مردم خوانده می شود انسان در پارسی مردم خانده می شود مردم در اصل مر مره تخمه این بوده است مره تخمه بوده است و این به این معنی است که یعنی تخم سیمرغ چون مر یکی از نامهای سیمرغ است. مردم که مر تخم باشد به معنای تخم سیمرغ تخم خدا هست پس انسانی که تخم خدا هست میخواهد همانند خدا بروید و بگسترد تا روی زیبای خودش را ببیند تا روی زیبای تا روهای زیبا... زیبای خودش را ببیند این در او فقط یک رو نیست برکه روحها فراشای مختلف است بینش برای او کشف حسن خودش است زشتی ها و عیب و نقص ها نیاز به کشف ندارند همه جلو دست و پا افتادند. اینها را هر کسی با یک دید عادی میتواند ببیند از دوره مکیابلی در اروپا همه زشتی ها به نام صفات اصلی انسان و واقعیت انسان کشف و شناخته شدم و اینها این, این صفات بنیاد سیاست و اقتصاد نهاده شدم ولی ایرانی میگوید نه باید حسن را در انسان جست و کشف کرد بلکه در جلو و نبوده باشد ولی حسن یا زیبایی را باید در خود و در هر کسی جست و پرورد تا کشف بشود انسان باید باغبان ها و زیبایی ها بشود انسان باید مامای حسنها و زیبایه ها از انسانها باشد بینش حقیقی در فرهنگ ایران جستجوی حسن خود و کشف حسن خود و پرورش حسن خود است تو حسن خود اگر دیدی تو حسن خود اگر دیدی که افزون طرز چه پجمردی؟ چه پوسیدی در این زندان قبرایی چرا خاده نمیباشی ز الطاف ربیع دل یعنی بهار دل چرا چون گل نمیخندی چرا انبر نمیشایی هر چند که مولوی این اندیشه را در رابطه زندگی پس از مرگ تعبیر میکند ولی این اندیشه در فرهنگ ایران این جهانی بوده است و تنها محدود به زندگی پس از مرگ نبود است. انسان می تواند حسن خود را در اندیشتهان ببیند در بینش در روند بینش می تواند حسن خود را ببیند در وقتی شاد شد حسن خود را می بیند. در رقص حسن خود را می بیند. در بازی در هنرها در موسیقی در لذت از موسیقی حسن خود را می چنانچه در ابیات آخر این قدر مراجعه به تصویر اصلی ایرانی می شود ببیند بی خاک سر خود درون چهره بستن ببیند خاک سر خود درون چهره بستن که من در دل ها دارم زیبایی و رنایی. ببیند سنگ سر خود درون اون لعل و پیروزه که جمجی دارم در دل کند آهنگ بالایی ببیند آهن تیره دل خود را در آینه در گذشته از آهن آینه می سختن. ببیند آهن تیره دل خود را در آینه که من هم قابل نورم کنم آخر مصفایی ما در درون خود معشوقه زیبای خود را داریم در هادوخت نسک در عوستا به رغم تحریفات موبدان زردشتی، این اندیشه باقی مونده است در اونجا دین را تنها یعنی موبدان به مجموعه اعمال خوب تقلیل میدهند. ولی در اگر دقیق بشویم میبینیم که دین در آنجا این معشوقه است که در بن هر انسانی است. این است که مولوی میگوید ما شاهدیم یعنی ما معشوق و محبوبیم ما نیشوروی و مطلوبیم ما زیبا و صاحب خسنیم از این رو ما عاشق روی نهفته در خودیم از ما مشو ملول از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم از رشت و غیرت هست که در چادری شدیم روزی که ابکنین زجان چادر بدن بینی که رشک رشک و حسرت ماهیم و فرقدیم فرقد یک ستارهای بوده از نت خود رو را بشو و پاک شو از بهر دید ما ورنه تو دور باش که ما شاهد خودیم ما مشوق خودیم آن شاهدی نیم که فردا شود عجوز آن شاهدی نیم که فردا شود عجوز ما تا عبد جوان و دلارام و خوشقدیم این است که مولوی به انسان که چنین در گوهرش زیباروس میگوید مولوی به انسان که چنین در گوهرش زیباروس میگوید که بوکسه بده خیش را بوکسه بده خیش را ای سنم سیمتن تو خودت را بوکس ای به ای به خطا تو مجور خیشتنم در خطن تو مرو مرو خودت را در خوتن و در اروپا و امریکا کش کنیم به برندر کشی سیمبری چون تو کو به برندر کشی سیمبری چون تو کو بوسه جان با آیدد بوسه جان با عایدت. بر بردهن خیشتن بهر جمال تو است جندره هوریون بهر جمال تو است اندرای هوریون عکس رخ خوب تو عکس رخ خوبه تو خوبیه هر مردوزن این جندره یعنی یک آلات موسیقی آلات به آلات موسیقی جندره میگن اون وقت اساساً رام چندره چندرا رام در سانسکریت به معنای رام رام موسیقی نواز هست. پرده خوبی تو شقه ظرف تو است در شعر بالا دیده میگوید که این همه هوریان برای تو موسیقی می نوازند عکس رخ خوب تو عکس رخ زیبای تو تمام زیبی های همه زن زنها پردا خوبی تو شقه زرف تو است. ورنه برون تافتی نور تو ای حالا ببینید اینجا بلا فاصله این برمیگردد به اینکه این زیبایی در درون نفته در درون انسان است آمد نقاش تن آمد نقاش تن سوی بوتان زمیر به سوی بوتان زمیر آمد دست و دلش در شکست باز بهماندش وقتی که این بوتان زمیر خودش را دید بس که اینها زیوا هستند از از تعجب دهانش باز شد پرده برانداخت دل از گل آدم پرده برانداخت دل از گل آدم چنانک سجده در آمد ملک گشت به دل مفتتم وقتی که از گل آدم پرده برانداخت دل, دل از گل آدم پرده برانداخت تمام فرشده به او سجده کردن واسطه برخواستی یعنی پیغمبر و رسول و مذهل و اینها همه برخواست گر نفسی ترک عشق پیش نشستی به کی تیچلبی کیمسن این پدیده عاشق شدن به خود و بوچه بر دهان خیل دادن در روانکاوی نارسیست گفته می شود و معنای یک گونه بیماری روانی دارد و از معنای اصلیش که شناخت و کشف زیبایی انسان در درون خودش هست فرسخا دور افتاده است. ولی مولوی خوب روشن می کند که این زیبایی و خوش را این در درون و زمیر هر انسانی باید جزد و کشف کرد آمد نقاش تن سوی بوتان زمیر دست و دلش در شکست باز و مندشتن. هیچ جا از این روایت قرآنی که فرشتگان همینجا ببینید همینجا که شعری در فوق آمد از این, روا... از این روایت قرآنی که فرشتگان به امر الله به دستور الله پیش آدم یا انسان سجده میکنند مولوی بهره میبرد ولی درست سیخ را وارونه میکنن اینجا فرشتگان به امر الله این کار را نمیکنند بلکه در اثر مستی از دیدن زیبایی که در درون انسان هست در آنها فتنه برانگیخته میشود پرده برانداخت دل از گل آدم اینجا امر الله نیست زیبایی آدم که نمودار شد سجد در آمد ملک گش به دل مفتتن اونگاه در شعر بعدی زیر هر واسطه و هر رسول و نبی و پیامبر میزند واسطه برخواستی گر نفسی ترک عشق ترک عشق یعنی چون که ترک ها میکردن یعنی یغماگر عشق پیش نشستی به لوت پیش این حسن اصل حسن و زیبایی که در درون ماست می نشیند که ای چلبی کیمسن ای چلبی تو کی هستی درست همین که تو کیستی تو کیستی این سوالی که تو کیستی درست در دخت نست انسان از دیدن این زن خدا که از درونش پدیدار شده است میکند همین سوال رو کیمسن تو کیستی چونکه از دیدن زیباییش محد می شود. این همان مشاهده مستقیم روی زیبایی خود است که عاشق حسن خود یعنی عاشق حسن اصل زیبایی است که سیمور است می شود. اصل تیمور که اصل زیبایی است در رام یعنی در ظهر زیباییش پدیدار می شود. این ذبع نهفته است. در زهره در رام نخستین بار زیباییش پدیدار می شود. این دیدن روی خود و مصد زیبایی خود شدن به عشق به خود می انجامد که اصل پیدایش جهان است همه همه ذرات عاشق خود می شوند از این عشق به خود همه آفریننده می شوند خدا یک جا در یک جا فوق آسمان ها متمرکز می شون. بلکه همه دنیا در عشق به زیبایی خودشون می آفرینند این اندیشه در همان واژه نرگس این که گفتیم نارسیسم این در همان واژه نرگس که نارسیس باشد باقی مانده است دیدن با چشم دیدن با چشم است و چشم تخم ما هست چشم در فارسی نرگس هم هست دیدن با چشم است و چشم تخم ماه است و چشم که به نام ماه می یعنی چی؟ یعنی تخم ماه ماه را می بیند یعنی ماه خودش خودش را می بیند ماه خودش را در آینه می بیند به عبارت دیگر ماه خودش را می بیند و ماه در فرهنگ ایران و در همه قضالیات مولوی زیبا و خوب است ماه اصل بینش و اصل زیبایی هر دو با هم است این است که چشم انسان که تخم ما هست یا بخشی از, از خود ما هست در هر چشمی در نگرش به ما زیبایی خودش را میبیند نام چشم در خوزوارش ایومن ای است که به معنای تخم ماه است و در فرهنگ ایران مج... ماه مجموعه همه چشم هست. هر چشمی هر چشم برابر با خرد بنهاده میشه هر چشمی یعنی هر خردی بخشی از ما بخشی از خرد خداست خرد انسان و خرد خدا که هم گوهرم یعنی یک خرد انسان که با چشم خود میبینه با چشم خدا میبینه چشم برابر با خرد است. خرد انسان که میاندیشد این بخشی از خرد خداست که میاندیشن در هم پرسی انسان ها با هم این خداست که در همه با هم میاندیشن این است که نیازی به واسطه و رسول و مذهر و ولایت فقیه و امثال این همان نیست این دیالوگ چشم و خلط ها باید باشد کسی که خود را واسطه کرد دیگر چشم ها را از آن باز میدارد که ناظر زیبایی خود باشد ادبیات ایران ادبیات ایران در ادبیات ایران میبینیم که چشم این همانی با نرگس دارد غلام نرگس مست تو تاجدارانم خراب بادی لعنت تو هوشاران حافظ یا پردوسی میگوید چودانست که از مرگ نتوان گریخت دسی آب خونین در نرگس بریخت دیده میشود که نرگس در ادبیات ایران دو ویژگی دارد یکی گفته میشود نرگس مست و نرگس مخمور و دیگری گفته میشود نرگس بیدار و نرگس بینا چرا این بدان علت بوده است که باده گوهر انسان را در فرهنگ ایران پدیدار میساخته است از این رو باده و مستی پیوند مستقیم با بینایی روشنی و بیداری دارد اینها رو باید در نظر داشت تا فر با پرهنگ دقیق ایران آشنا شد با پرهنگ جرف ایران آشنا شد برگزیدن این گونه این همانه ها استوار بر تصویر جهانبینی ایرانی بوده است یعنی نرگست چشم که نرگس هست یک تشبیه شاعرانه نیست نرگس ماه بوده است چشم ماه است. نرگس نتانا این همانی با چهر دارد بلکه در بندهش بخش نهم این همانی با ماه دارد در واقع نرگس نماد حلال ماه بوده است که در خودش خوشه پروین را دارد حلال ماه به درون خودش میگرد زیبایی درون خودش را تماشا می‌کند. خوچه پروین در درون ماه این یکی از بزرگترین تصویرهایی است که فرهنگ ایران از آن استفاده د برده است نام دیگر خوچه پروین یا سریا نرگسه چرخ است یعنی پروین هم اسمش نرگس است پیش از آن آمدن میتراییسم و دین زردشتی ایرانیان به گونه دیگر درباره آفرینش جهان می اندیشیدم. در میتراییست میتراس جهان را می آفریند یعنی که در ذهن ماها جهان دختن میترا ولی میترا اسم سیمور بوده است میتراس این است که ما به غلط میترا می نامیم در دین زردشتی اهورامزدا جهان را می آفریند ولی در پرهنگ ایران حلال ماه را زهدان آسمان می دانستند. و وقتی خوشه پروین حلال ماه گفتیم نرگز هست خوشه پروین نرگز در حلال ماه قرار گرفت یعنی در زهدان و آسمان قرار گرفت از این اقتران ماه و پروین جهان زایده می شود این بود که در این بود که در معماری ایرانی ها روی اتاق اتاقهایشان نقش نرگس را نصب می کردن. از از آج و چیزهای دیگر می و بر سقف, سقف اتاقشان می چسبانیدن این برای این خاطر بود که اونها چشم آنها همیشه نرگس نرگس نرگس رو ببینند تا در این روند آفرینندگی جهان انباز باشوند خوشه پروین یک ستاره ناپیدا بود خوشه پروین یک ستاره ناپیدا دارد. و شش ستاره پیدا این ستاره ناپیدا همون بهمن است و شش ست و شش ستاره دیگر تخمه بودن بودند که در شکم ما تبدیل به چی می میشدند تبدیل به ابر یعنی سیمرغ میشدند تبدیل به آب و به زمین و گیاه و جانور و انسان یعنی جمشید میشدند این است که خوچه پروین در حلال ماه قرار میکره حالا یک نکته جالب اینجا میگویم شاید به درد شما بخوره. بر پایه این تصویر نرگس در نرگس که خوشه پروین در ماه باشد ایرانی ها به آنچه امروز ساندویچ میگویند نرگسه میگفتند یا بدماورد و در خراسان به دان نرگست صوفه میگفتن که خوراک گوشت و تخمور و پخته در نان نازک پیچیده باشد و عربها سپس از این واژه استفاده کردند به ساندویچ نرگسیه گفتند امیدوارم از این پس از این پس به ساندویچ همین واژه را بگوییم حالا این بود که نگرش حلال ما به درونش یعنی نرگس به نرگس که تخم‌های گیتی بودن بسیار اهمیت داشت از همین کلمه نرگس واجه نارکوتیکا آمده است یعنی چون که نرگس بوی خوشبوی دارد که انسان را مست می کند این واجه نارکوتیکای امروز از همین واجه نرگس اومده این بود که این نرگس نرگس را که می بیند مصد زیباییش می شود بنابراین این خون بودن خوچه پروین و حلال ماه که زهتان جهان باشد در نگرش به همدیگر عاشق زیبایی هم, هم میشدند و از این دیدن زیبایی و عشق و مستی بود که جهان ایجاد شد این است که ماه که نرگس باشد به پروین که نرگس باشد یعنی به خودش نگاه میکرد و آشق خودش میشود. ببینید از این تصویر چه نتایج گرفتند زیبایی گیتی را میدید، چونکه در این خوشه پروین تمامی گیتی بود گیتی زیبا بود ما بوکسه بر دهان خود میداد. دهان او از زیبایی بوتانی که در زمیرش داشت باز میماند. همین اندیشه در پرهنگ ایران بود که سپس در اندیشه عرفان خلاصه شد که خدا در آینه خودش را می و آشق زیبایی خودش می شد. و از این عشق است که جهان پیدایش می‌آورد البته این اندیشه این اندیشه در فرهنگ ایران تبدیل به حدیثی شد که از دهان خود رسول الله بیرون آمده است بدین از دهان محمد این خلاصه فرهنگ ایران تراوش می‌کند و از دید اسلامی هم فداصت پیدا می‌کند این است که باید به, به استراتژی های مولوی راه یافت که در گفتاری که درباره فلسفه گفته و معنا در اندیشه مولوی خواهد شد این استراتژی بررسی خواهد شد که از آیات قرآنی از اصطلاحات اسلامی چگونه استفاده میکنند شما میتوانید در هر اصطلاحی معانی دیگر بگویید این مسئله نیست در اصطلاح اسلامی صحبت کردن در آیات قرآنی صحبت کردن این مصحلی نیست که شما قرآن را میگویید یا اسلام را میگوید در همین آیات میشود هزاران چیز دیگر رو گفت که امروز به نام اسلام راستین همه چیز را از همین آیات بیرون می آورد این اقتران ماه و پرمین که اصل پیدایش جهان و نخستین اشت آسمانی بوده است نقش بزرگی در ادبیات ما دارد. که امروزه بر همه پوشیده است و میپندارند که فقط بیان تشبیحات شاعران است مثلا حافظ میگوید رموز مستی و رندی زمن بشنو رموز مستی و رندی زمن بشنو نه از حافظ که با جام و قده دم ندیم ماه و پروینم حافظ در واقع میگوید که همیشه با جام می ندیم اقتران ماه با پروین است یعنی انباز در عشق نخستین است عشق آفریننده کیهانی را هر دمی با مستی تجربه میکنم یا اینی که البته حلال ما با رام یعنی با زهره این همانی داشت این است که مولوی میگوید چه خیال, تو بتا... چه خیال تو بتاورد؟ چه مه چارده, چه مه چارده بر من؟ یعنی ماه چارده در نگرش با من، با من عشق ورزی می این رو در یکی از گفتارها بحث خواهیم کرد که این نگرش همیشه علامت، همیشه بیان آوستن کردن بوده چه خیال تو بتابت چه مه چارده بر من؟ تجزا چو و است از و پروین یعنی وقتی که تو به من یعنی محلال ماه مثل ماه چهارده بر من میتابد و با من عشق ورزی میکند زهره و پروین بر من حسد میبرد بیا میگوید حالت ها،, ها جمع رسیدن به اون می به کف من پس من یعنی بعد از من زهره بنوم شد قده از ساعت پروین یعنی از معشوقش قده بنوشد ببینید اینجا تمام معانی خیلی کوهنی دارد که بایستی به اونها رو آورد تا اینها رو فهمید من در زیبایی و عشق و آفرینندگی کیهان در بون کیهان انبازم این حلال ماه این همانی با راه یا زهره داشت چنانچه لحن بیست و یکم باربست ماه بار کوهان نام دارد این لحن ۲۱ کوم برابر با روز ۲۱م است روز بیست یکم روز رام است پس بنابراین ماه بر یعنی حلال ماه بر کوهان و کوه در کردی به معنای پروین یا سر است. پس بنابراین علت اینکه رام ماه بر کوهان نامیده شده است چون در روز م بیست دوم هر ماهی اختران ماه و پروین است و این روز در فرهنگ ایران باد خوانده می شود. که هم جان است و باد هم جان است و هم عشق و درست رام آخرین است که جزو تخم یا بن انسان رام یکی از بخش های بون انسان است و در واقع انسان یا جمشید روز بیست و سیم که این همانی با روز بیست و دارد انسان یعنی جمشید شروع به پیدایش در جهان می کنند. و درست این همون است که امروز در اروپا به کردار به عنوان روز زادروز عیسیا میگیرند و ما از آن غافلیم روزی که از نخستین عشق آسمانی جمشید زایده میشد به همین علت به جمشید جمشید سریره میگفتند در اوستا موبدان سریره را به زیبا و خوشگل ترجمه میکنند و میگویند جمشید سریره یعنی جمشید زیبا زیبایی ویژه ویژگی فطری و گوهری جمع یعنی انسان هست و چون جمع بونه همه انسان انسانهاست به معنای آن است که انسان فطرتا زیباست زیبایی در فرهنگ ایران چون که در بخش دیگری خواهیم گفت اصل هماهنگ سازنده است چیزی زیباست که هماهنگ میسازد که هماهنگ هست البته این موسیقی این رام این روان در انسان که این همانی با رام دارد هماهنگ می‌سازد زهره یا رام چون خدا و گوهر موسیقی است انسان،, انسان را هماهنگ می‌سازد یه اندازه که امروز ما در معنای بسیار تنگ می‌فهمیم در اصل همین معنای هماهنگی را داشت است اندازه در اصل همتاچه یعنی همتازه بوده است که با همتاختن باشد دو تا که با هم بتازن یعنی با هم هماهنگ باشند گردونه آفرینش را به جنبش می آورد. جمشید سریده که به جمشید زیبا ترجمه می شود معنای جرفتری دارد رد پای معنای اصلی سریده و سریر در واجه باقی مانده. است از یک سو می بینیم که سریر قرارگاه سر از گردن است و این رام است گردن به طور کلی و نقطه پیوند سر به گردن از آن رام است از سوی دیگر در برهان قاطع میبینیم که واژه سریر سرفراز نام قاری است که در... که خی... کیخ وسرو در آن قایب شد یعنی چی این قار جای فرشگرد یعنی جای از نو آفرینی جای نو شدن است ولی سر افراز. سریر سرافراد سرافراد نام رود و است که همون ارتا باشد و این این همانی با پر با پربین دارد چون که اهل اه اه فارس به این روز اردیبهش نمی نمیگفتند اردا خوشت می گفتن یعنی اردهای خوشه که همون پروین بین باشه سرید سرافراز یعنی سریر فرزند سرفراز یعنی زهره یا رام فرزند همون خوب دیده می شود که جمشید زیبا در واقع جمشید فرزند زهره فرزند زهره یا فرزند رام است ما اساساً واژع جم را امروزه غلط میفهمیم و فکر می کنیم جم نرینه است در حالی که گیما که همو جم باشد به معنای همزاد یا دقیقاً به معنای جفت و به هم پیوسته است یعنی معنای عشق دارد هنوز بررسی ما به پایان نرسیده است چون ردپای بیشتری این است از سوی می‌بینیم که سریر به معنای رنگین کمان است که سیمرغ است و از سوی دیگر سریر به معنای اورنگ است که بهرام باشد یک بار می‌بینیم که سریر هم به معنای رام یا زهره است هم به معنای سیمرغ است هم به معنای بهرام است و این سه بون و اصل انسان و زمان و کیهانان و درست در منتها العرب می‌بینیم که یک معنای سریر اصل هر چیزی است پس جمشید سریده به معنای جمشیدی است که از بن کیهان از بن زمان از نخستین عشق و هماهنگی از هم‌آبوشی زهره و سیمرغ بهرام پدیدار پیدا شد. شد. یعنی چی یعنی زیبایی بازگشت به بن است من در اینجا سخنم را به پایان میبرم تا دوستان از مأثر آقای کیومرث برخوردار شوند بسیار سپس بذارم خسته نموشید کنم خسور گرامی